از سلام علیکه یا عبا عبدالله سلام برو که چراغ هدایت است و کشتی نجات و سلام بر شما عاشقان کوی حسین علیه السلام من زینبم زینبم من من زینبم, زینبم من. از گست جان بر لبم من از غست جان بر لبم من تل خون ترا ابر توفان کم گین سر از دبو ران من دیو تنها تری اسم سلام بر حسین شهید کربلا و سلام بر کاروان اسیران کربلا مصیبت تمام نشده است تازه آغاز ماتم سرای کوفه و از آخانه شام است من زینبم زینبم من. از دلخون از ابر و توفان خمگین تر از باد و باران مانده به راه برادر تنها تریم گریا. دلخونتر گریان از ابر و توفان خمگین تر از باد و باران به برادر سلام به سختگان آشدائی ارادت ها و ازادداری هاتون اشک ها هاتون و حضورتون در حیطا و مجالس آقا عبا عبدالله حسین علیه السلام قبول و عجرتون با خدای حسین اما ای آشغان دل تازه آغاز مصیبته کاروان اسیران کربلا رو تنها نگذارید خیمه از آقا هنوز در رادیو معرف مارف برپاست و موج عشق شما رو فرام نخونه باناله یا زینب بانوه یا عباس هر روز ما آشوراست و سن چشم گنجینه‌فوله اشک علی مادر بسیارت و و همه شما شنبندگان گرامی موج عشق و امیدوارم از هاتون قبول باشه انشالله دوستان گرامی 16 و 6 دقیقه هست برامی زنده موج عشق رو تا ساعت 7 و 45 دقیقه بشنوید و امیدوار این مطالب مورد توجه و قرار بگیره بخش های مختلفی به این معلومه تقدیمتون میکنیم که انشالله همراه باشید و این بخش ها رو هم بشنوید خب خدمت لاجوردی هم سلام عرض میکنم خیلی خوش آمدید قبول باشه عرض دارید خیش بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ یا آبا خدمت عرض تعالی و همه شروعندگانه و علامه خوبتون عرض سلام و عرض تثریت دارم امیدوارم که همه عزادانی عزیزان مورد قبول درگاه لایی فرار گرفته باشه در خدمتشون باشه عرض دارید خیلی ممنونم متشکرم های لاجو ازتون با امیدوارم شنوندگان و بزرگوار همچنان با ما در ارتباط باشند در برنامه موج عشق به 3553 برای ما پیمه کرسال بفرمایید 3553 و همینطور به دو شماره تلفنمون 329 و 329 با شهر مقدس خون 025 تماس بگیرید تا سدای شما بزرگواران رو بشتری Thank okay. you. رد پای کاروان را بوی قربت به سمت غروب میبرد. باد پا می گیرد و خاکستر خیمه های سوخت را در هوا منتشر می سازد. گودال قتلگاه هنوز خون می قافله قافل دلنگران پشت سر را می نگرد. صدای زنجیرها ها بوی اسارت را دو برابر می کند تا چشم های به خون نشسته کاروانیان با عزیزانشان بدا نماید سوزش شلاغ ها سوز تنهایی را تند می کند لخت محمل هایند که های بزرگ را حمل می کنند. ای ساروان آهستران کارام جانم میرند بسم الله الرحمن الرحمن خاروان باز هم یک سفر مضابلون از دل قتلگاه را ولی مان در پیش دل برش دل اون تک تک کودکان زخمی را بی بی تک و تل ها سوار اشدار کرد بعد یک گوشه ای درب نشید تا دپید رو پر از دور که از مادینه که آمدم این جام دل سرد گشته و تو تاب گرفت علیا چبر انان مرچاب را دست عباست تو رکاب گرفت کجاز علی اکبرم بیاد رکاب بگیره کجاز قاسمم بیاد محمل بگیره خوب هایم به خاک خوابیدن با بدان زمان ها سفرم زینا باشم با خلی هم سفر باش با سنان با عمر سر خوب هایم به خواب خوابیدم و بدان زمان هم سفرم هر کجایی که بینگرم باشد سر هر نیزه با نوجات رستان و مسلمین استاد لاجه باشیم در برنامه های لاجه ما صحبتی داشتیم درباره خطی که با سپیدی مبعث آغاز شد به سبزی قلیر رسید پس از اون با در آشورا در حقیقت سرخگون شد و چلاه به رنگین کمان ظهور مولامون حضرت مهدی عجلت داخت آلافه شریف خواهد رسید که شاهد اون ادارت جهانی باشیم زنده باشیم و ببینیم اون زحمت شماست. خواهش می‌کنم توصیف بسیار زیبایی داشتید. خداوند منت بر مؤمنین گذاشته. لَغَدَّ من اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَابْتَغَا ثَهُمْ رَسُولًا. چون مخاطب دین و به صد انبیا برای اون کسانی است که از حد این دنیا بخوان بالاتر برن. دین یعنی این و روش زندگی و باور برای اون کسایی که دنیا رو وسط راه میدونن نه نهایت راه بله فقط من الله. خدا و منش رو میگذاره می اینها احتیاج برنامه دارن احتیاج به رابطه الهی دارن احتیاج به رسول دارن قبلن هم صحبت شد که اساس این دین لقا الالله لقا خدا رو میخوان و شایستگی بهرهمندی از این لقا کسانی که اصحاب الیمین هستن با یومن و برکت هستن کسانی که بهدمن هستن به وجه خدا نظر میکنن ناظر به وجه حق هستن خب این جریان وحی بعد استمرار پیدا کده لا نفرق با این احد من رسوله اصلا ما جریان حضرت آدم علیه السلام رو تا خاتم و نهایتا تا امام علی محمد الله یک خط مستمر روخانی میدانی که بنابر لطف و عنایت خداوند حق خودش میدونه که و برای خودش واجب میدونه که مؤمنی رو نصبت کنه خط اتصال بین زمین و آسمان همیشه این خط بوده درست. و امکان بهرهمندی انسان از این حجت بوده عرفان خدا بدون توجه به رسول امکان نداره این دکته است که با همه سادگی در دعایی که معمولا میگن همین زمان خونده باشه دعایی به حساب نسبت با آقای ما زمان اللهم عرفنی نی نفسک خدای تو خودت رو به ما بین ما فینه که این لن تو اعرف نی نفسک لم عرف رسولک تو اگر ما تو رو نشناسیم رسولت نمی نمیشناسیم. تو رو نخواهیم رسولت رو نمیخوایم رسول نشان از تو داره دلالت به تو داره انظار به تو داره و رحمت از توست برای ما خب در اینجا باقی میمونیم نه اونایی که میگن خدا کافی است اون بس میرسن خدا بدون رسولش بدون برنامش ما به جای راه نمیبریم رسول رو احتیاج داریم نمیتونیم در ادیان بمانیم بگیم خدا مسیحیت خدا رو دارد حالا خدای آلودم نباشه. باز کافی نیست. الله خون معرفنی رسولک تو باید تو باید رسول تو به ما نشون بدی. فه ان ای لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اونایی که فکر میکنن با رسول کار تمام هست وسط راه هستن. ما احتیاج به حجت داریم. الله خون معرفنی حجتک فه اینه که ای لم تعرفنی حجتک دلل تو اندینی من به این نکه آخر که زلالت از دین است، خط استمرار به اس، تا قدیر که شاخص ولایت هست تا آشورا که حجت خدا و باروری مجدد و احیای مجدد دین هست رو یه خط مستمریش که آینده بسیار روشن و امیدوار کننده ای داره آینده انتظار و ظهور حضرت و تحقق کمال دین اتمام دین از اظهار تمامی دین ریو زیه را حالت دینه که اکثر مفسرین این آیه رو در مورد امام مام زمان میدونن که به اصد نهایتا به اظهار تمام دین جایه قرآن وعده به او داده اظهار خواهد انجامید و این مورد اتفاق همه مسلمان است. حالا اهل سندت میگه کنم موعود نوعیست مهدی نوعیست در خواهد آمد ما میگیم اتصال این عالم این که یا روشنه و من و شما داریم بهره میگیریم همیشه باید متصل به منبع باشد تا نورانی داشته باشد اتصال همیشه هست حجت باید همیشه حضور داشته باشد الان ما نمیگیم حضرت قائبن یعنی دخالت ندارن نه حضرت استفاده ما از حضرت, از حضرت. اول حضرت داره بشریت و جهان هستند استفاده ما از خرشید از پشت ابر ما بهره خودمون رو میبنیم وقتی عبر هست خرشید بی بهره نیست مانع بین ما اما اما داره بهره خودش رو میرسونه این دکته ای که مطرح شد پس ضرورت دین برخواسته از نیاز انسان است اهداف دین اهداف دین صرف رفاه نیست رفاه هست تنها رفاه نیست رفاه به عنوانی که ما دنیا رو آباد کنیم برویم نیست دنیا وسط راه هست دین احتیاج به روش دارد که اسمش مذهب است، احتیاج به راهبر دارد که اسمش امام و رسول هست احتیاج به ربانیون دارد که واسطه فیض هستن از خدا بعد بگیرن به خلق خدا باید برسنن انسان احتیاج به باغبانی دارد انسان احتیاج به مدیریت دارد انسان احتیاج به طبیب دارد تبیری بود که شما در از برنامه اشاره کردی طبیب دوارون به طبه کسی که بشریت رو میخواد برساند نگم اگه همیشه بشریت مریض هست نه حفاظت میخواهد بهداشت میخواهد درمان روحی میخواهد چرا ارفانهای کاذب انقدر شیوع پیدا کردند انسان بینهایی طلب است انسان عاشق صفت است. عشق و کمال خواهی و بینیاهت در درون هر انسانی نهفته شده است. درسته. این اوصاف که میگن چهار صفت در درون انسان جز نیازهای اساسی انسانت که کنجکاوی هم جز اون قرار حقیقت طلبی نهایت جویی صفتی. انسان عاشق خلق شده است. محشوق شو انتخاب میکنند ما نمیخوایم بیان با عرفان رو عاشق بکنیم انسان عاشق هست عاشق کماله عاشق زیبایی هاست عاشق پرواذه عاشق خوبی هاست انسان روح الهی در درونش دمیده شده نفخته فیه من روحیه علت سجده ملائکم بر انسان کامل و انسان شایسته به خاطر وجود اون روح است و الا ملائکه که نمیان بر گل و خاک و نطفه و بر شهودران سجده کنه سجده ملائکه بر انسان به خاطر وجود اون روح است و به تبییر عین معصومین کسی که گناهکار میشد کافر میشاید اون روح را رو از دست میداد میشه حیوان بلهم اول تفاوت یک فرض بگیرین یک حیوان که خیلی استعدادام دارد و نمیدونم مراد قلبم نمیگیره قندم نمیگیره با یه انسان که ایمان نداره روح خدایی نداره از عقلش استفاده میکنه حاکم درو شهوته چیه؟ ما میخوایم عادلانه صحبت بکنیم تفاوت این موجود با این موجود چید؟ این موجودی کهش انسان میگوییم ارزشش، عظمتش، عالم دور او میچرخند به خاطر اینکه اون روح رو دارد حق انتخاب رو دارد عاشق است عاشق, عاشق کمال است اگر عشقش بشه زمینی بشه زیر پاش روشش بشه و روش ایوان ها و یتمتعون کما که ما همینطور که حیوانات تمتع برن هدف انسانش بهرهوری بهره مندی تو ایش و قد <تصفيق> نهایت آرزو هم بشه دنیا خب مبلغ هم که مبلغ هم بلوغ فهم و درکش هم همین دنیا بشه و تضمینو بخوام آتونا دنیا حسنا قرآن میگه بلهم عذ کلعانام بلهم چرا اهانت نمی کنه توصیف داره میکنه خب تو همه چیز رو از دست که ارزشو از دست دادی همه چیزو از دست دادی وقتی از دست دادی خب وقتی که خدا اینا من لجن شدم خب به من میگن لجن که بد نیست که خب لجن نباید بشم حالا که شدم به گل خوشبو انسان با گناه لجن میشه انسان از لجن اومده با روح خدا آقا شده و دین میخواد این روحو گسترش بده این روحو تربیت کنه با عبادتش با اخلاقش با باورهاش با عقاعدش با اعتقادش به قیامت با خدا ترسیش با خدا که من درست قبل توضیح دادم اسمش عبودیت میذاریم عبدی انسان عبد میشه هو و رسوله بالاترین مدالی که خداوند به پیامبرش میده میگه عبدی تو بنده بودن خدا یعنی شکل خدایگونه پیدا کردن یعنی نظر به خدا داشتن نور خدا در درونت گسترش بد همه وجودت بشه نورانی همه وجودت بشه اسم اللهی همه وجودت بشه ناظره به خدا یعنی به بینهایت مطلق و کمال مطلق خب این خطی بسیار زیبایی که شما ترسیم کردید از بعثت که عنایت خدا رسولی آگاه عادل رسولی که ملائکه و جبرائیل می میآید رسولی که همه مراتب رو تیه کرده مراجی داشته یه جوانی من گفت چرا رسول الله به چه دلیل مراج رفته بره اگه رسولی که مراج نره رسول نیست رسول خاتم رسولی که همه مراتب رو دیده و داره با ما حرف میزنه قبل از اندلاب بعضی همین رو میگفتن که قیامت رو دیده گفتیم اتفاقا قیامت رو دیدن به ما گفتن اصلا حجت خدا اونا دیدن حق یقین رسیدن نظر کردن میبینن و میگوین نه که بگوین تا ببینن دیدند و گفتن چشیدن و گفتن حتی نظر کردن حتی عبور کردن جز ناوهیه خامده از جهنم هم عبور کردن مراتب جهنم رو دیدن مراتب بهش جایی رفتن که جبرائی من دیگه نمیتونم بیام. جبرائی کم آورد رسول رفته چون کشش رو داشته این رسولی که رفته با ما صحبت میکنه با ما گفتگو میکنه خط ما رو استمرار میده، دین با رسول شروع میشود با وسیعش گسترش پیدا میکنه با اولیا خودش با حجج خودش عملیاتی میشود متمم میخواد یا <تصفيق> یوحنا رسول، بلکه ما اون زلیلی که مرد خدا نعمة رو داده، نعمة ها اتمام میخواد. ببینید هر یعنی که خدا ها رو داده، متمم میخواد یا این ها اتمامش به فعلیتشه؟ درسته. اینو نبود خدایو از میگم شعر رو بکشیم که شدام میگه متمم میخواد و اتمام تو علیکم نعمة و روی تو علیکم الاسلام دینا، دین مرزی، دین پسندیده. برخ از اون دینی که حجت رو کنار داره اون متمم نعمت هست اگر اونه باشد ما امکاناتی داریم مثل شما همه مساله رو میدن حالا من مثال سیاسی بدنم ما توم امریکت اومد امکانات کم نداریم متمم نعمت نداریم که مدیریت صحیح به کارگیری صحیح باشه حالا بیارید در بوده عرفانی ما در درون خودمون استعدادهای زیادی داریم قذب داریم شب اینا همه استعدادها توانای ما فکر داریم اندیشه داریم از کنم وهم داریم عقل داریم قدرت تفکر داریم قدرت تعقل داریم قدرت تدبر داریم این قدرت‌ها در تر تر درون ما گذاشته گذاشتن که چیکارش کنیم خرج چی کنیم کنی؟ گفتره گذاشتن ما اگه ده تا اینا نشون راحت‌تر بودیم دیگه اگه فوزون طلب نبودیم دیگه نه زخمیده می‌گرفتیم نه افسردهگی پیدا می‌کردیم این قدرت خیال که عرفان از درون خیال و تخیید هنر زائیده می شود این فزون طلبی خدا چرا مور فزون طلب در درون ما گودش که همش انفجار داشته باشیم فزون طلبی خرج فساد بکنیم چرا که وقتی انسان خرج شد اتجالو فیامن یفصده فی ها و یست ما چرا که اول گفته آو این موجودیه که فسادگره بانیم. چرا؟ چون قدرت زیاد خیلی توان دارید انسان دمیده شده نحنون و سبب به هم و و نقبت سلط قال اینی علم علم این وجود فزون طلب بینهایت هایت خواهه که هر خدا رحمت کن ما تمام امکاناتی که انسان پیدا م... پیدا کرده تعبیر این بود هنوز یه موتور انسان روشن نشده. چرا میگیم دوره آخر زمان که خب الان قروب هم هست آقای امام زمان روحی فداحة. چرا میگن در اون زمان اسماء از هفتاد و چند اس یک اسم یعنی یک سر از اسرار الهی فاش شده هفتاد و چند سه زمان آقای امام زمان انسان در فضا سیل می کنه. خودش در اوی آب سیل می کنه نمیدونم کنوز اینا خیلی مهمم نیست مهم که این, انسان این استعداد در درون انسان نهفته شده و انسان آمده تا لیاقت لقاء خدا و زندگی در برزخ و در قیامت روب سوی الهی یا ایوه الانسان این نکه کادون الارب بکر که تنف و ملاقی ما داریم به لقاء خدا می رویم دو گروه میشیم یا اصحاب یمین هستیم یا اصحاب خدای نه بحله احلیت خدای نکرده عذاب رو پیدا می کنیم پس اگه میخوایم بهره من احتیاج به حجت داریم احتیاج برنامه داریم به اصد دین رو مطرح کرد طراحی کرد قدیر طرح اجرایی رو اوورد و ولی الله العظم نتیجه گیری این دو ته رو انجام بده جهان آماده میشه دون... حضرت برای اروپا و آمریکا برای همه کولات همه عوالم زمین آسمان برنامه داره حتی آسمان ها من گاهی رو قرآن دقت میکردم وقتی که آقای ابو عبدالله نوصه میگه اول مت مصیبتو که فسموات علی جمی اهل سماوات هم زمین و سماوات اهل سماوات که از مصیبت امام حسین علیه السلام لطمه می‌خورن اهل داری سماوات عهد داره. اهل خواست خودش رو داره. اونام هم حجت دارن. حسن حجت اونام هست. اونا رزق میخوان. حسن واسطه رزق اونا هست. آقا امام, زن... امام زمان علیه السلام واسطه رزق انبیا و اولیاء خدا و آثار اونها و ملائکت الله هست. اونها رزق فقط به حجت خدا نمیدن. حجت خدا به اونها رزق میده. این خط که شما تو تس... تصویر خوبی ازش داریم خط سبز و سرخ و عرض کنم رنگی و رنگینی کمانی از ارزش و که در اونجا انسان تبدور پیدا میکنه انسان تعریف جدیدی پیدا میکنه انسان بارور میشه ما انسانها رو زایه کردیم فساد رو و حرص و نسل رو از بین برده بشریت شریعت حرص و نسل ما عالم عالم ما حسل بشریت نسله یه نگاه کنیم به از کنم این سایت هایی که هست دادن دنیا رو نشون میده شما ببینید دنیا لذتش به چیه غیرت شهبتانی جز فساد جز از بین بردن زین ها جز از بین بردن وقتی ما میگیم شیطان حاکم هست جریان نفاق که مکمل شیاطین هست هر سونست رو از بین میبر. وقتی تر... ولایت در زمین پیدا میکنن امروز هر سو نسل عالم زمین آلوده شده انسان آلوده شده احتیاج به احیاگری دارد احتیاج به گامه های همچون زینب دارد کسی که از حجت خدا بگیرد کسانی که تح... تربیت بشن احتیاج داریم به کسانی که چش... در چشم حجت خدا بیندازن بی از قرآن حجت خدا و از روش حجت خدا بگیرن و بشریت و یک نگاه جب. آشورا چیز فرهنگش احیاء جدید و نگاه جدید به انسان در بدر بدبخت نسل کش از بین بینبرنده آرمانهای خودش به انسان امروز که نور چشم بدهد انگیزه قلب بدهد و توان پا برای رفتن بدهد خیلی ممنون و متکرم باید نجوردی خدا رو که ما این رشته وصف از زمان امام حسین علیه السلام به عنوان زنده نگه دین داریم تا انشاءالله برسیم به ظهور و منجی حضرت مهدی مهود عجل الله تعالی پنجوشه برحمد نهرب عالمین نماز عشق در صحرا به پا بود امام آشقان خون خدا بود سری که بر سر نی آیه می خاند. به هفتاد و دو ملت آشنا بود سر خدا ها سایه سرزه خدا ها تیر و مشک و خدا ها فرد ایگلوی برید بسم الله الرحمن الرحیم در روز یازدهم محرم ما مواجه هستیم با یکی از دردناکترین حوادث مربوط به حادثه کربلا و اون اینکه هرچند اباابدالله علیه السلام در روز ده هم و روز آشورا به شهادت رسید اصحاب یاران مخلصش به شهادت رسیدن اما سنگ دلی و قصابت قلب سپاهیان دشمن سپاهیان عموی اون چنان بود که بسنده نکنند به شهادت عبا سلام السلام و بعد از اینکه بر بدن مبارک اون حضرت اسب تاختند شب یازده هم رو هم اقامت داشتند در کربلا و روز یازدهم اجساد منحوس سپاهیان و عمر سعد دفن شد در حالی که بدنهای متهر شهدای کربلا بر روی زمین باقی ماند از جمله بدن متهر الله الحسین علیه السلام و سرهای این شهدا را به کوفه فرستادند اصر روز یازدهم بعد از نماز زهره است این سپاه منحوس عموی به فرماندهی عمر راهی کوفه شد ای کاش به همین مقدار بسنده می که عبا عبدالله علیه السلام و یاران اون حضرت و اصحاب بیت اون حضرت رو شهید کردن اما به این بسنده نکردند و اهل و این زنان و بچه ها رو به اسارت به کوفه همراه خودشون بردند و به ریسمان بستند، شکل اسیر دادن به اونها و با حال اسارت که خواستن تحقیر کنند اونها رو به ذلت بکشانند، اما در واقع خود اونها اسیر بودند و اینها سرفراز بودند در این حرکتی که انجام داده بودند، مقاومتی که کرده بودند و مظلومیتی که چشیده بودند، اینها سرفرازانه حرکت کردند و لذا این اسرا رو حسر روز یازدهم هم به سمت کوفه حرکت دادند و فردای اون روز وقتی که وارد کوفه شدند این حضرت زینب سلام الله علیه بود و برخی دیگر از ایال ابی عبدالله علیه السلام که خود خواندند سرفرازانه و مقتدرانه و از اینجا به بعد دیگه هرچند اینها شکل اسیر داشتند، اما در واقع مقتدرانی بودند که حامل پیامه کربلا بودن و باید این حرکت انجام می‌گرفت تا ندای عبا عبدالله علیه السلام از زبان همچون زینب یا امام سجاد یا ام کلسوم یا سکینه یا فاطمه بنت الحسین که در فقراتی در این سفر ناآگاه و جاهل و نادان برس. سر و و باقه باقه چه شد که در خامو سر شد که شدیم با خامو که کاروان آرام آرام از دروازه خاموش شهر گذرد و خسته از طوفان سهمگین کربلا قدم بر خاک کوفه می‌نهد آه باز نام این شهر ننگا آمد در تمام تاریخ شهری به بدنامی کوفه نیست از در و دیوار این شهر نفرین شده مرگ می‌بارد آسمان این شهر هرگز از مردمان هزار چهرش روی صداقت و جنگی ندید. این همان شهری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام را تاب نیاورد. این همان شهری است که هزاران نامرد در آن پشت مسلم ابن عقیل را خالی کردند. مهمان دعوت نمودند و با تیر و نیزه و شمشیر از آن پذیرایی کردند بگذریم صدای زنگ شطران کم کم سکوت وهمالود شهر را می شکرد. چه منظره قریبی دارد این کاروان از نفس افتاده و این سرهای برنیزه نیزه فرو رفته این زنان بی معجر و بی این کودکان برهن پای سیلی خورده حالا تمام کوی و برزن کوفه تمام کوچه ها و بام های شوم آن پر شده از جماعت کوران و کران آنان که بیخبرند از داغ ننگی که تا ابد بر پیشانیشان نشسته است و این زینب سلام الله علیها است که حماسه خیش را آغاز می کند کلام حیدری زینب کوفه را در هم می شکند در صبر تو روح استقامت دیدند آثار بزرگی و کرامت دیدند آن که به پا روح بزرگ در قامت خطبتت y'all. Let be dead. انه <تصفيق> جدایی نم می روید ای سار با نم می روید نم وان دل که با خود داشتم با دل ستا نم می روید نبا این باست هم تسکیت و تعذیت و همه شما همتنان گرامی عرضو میکنیم هر چه زودتر چشمانمون به جمع دیده ربای مهدی ما او در جلد لاحتان و فرج و شریف منطقه خون حسین علیه السلام انشاءالله روشن و منبر بشه در این عصر جمعه خب گفته کنیم باز هم با حاجات الاسلام و مسلمی نصراد داجه وردی تروری حضرت زینب سلامون علیه خواب کارهایی که حضرت زینب کرد. خواهیش این چند روزه که در خدمت شما بودیم و با به برکت خطبه آقا ابو عبدالله در منا تقریبا یک شکل و شمایلی از وضعیت جهان اسلام در اون دوره بله. و تحلیلی که حضرت نسبت به اون جریان داشتن و جریان نفاق کاری که انجام داده و گروههایی که باید اینها حرکتی انجام بدن رو تقریبا صحبت شد بله. که معابیه چه شخصیتی بود چه کارهایی انجام داده بود چه فرهنگسازی غلطی کرده بود چه بدعتهایی رو ایجاد کرده بود چه سنتهای رو زاییه کرده بود چه حق رو بد جلوه داده بود باطل رو به سطح حق جلوه داده بود چگونه شخصیت های ارزشمند رو یا کشته بود یا کنار گذاشته بود افراد بیریشه، افراد حتی عوض میخوام حرامزاده رو به عنوان خ... از کنم یاران اصلی خودش بید صورت فجیعی مطرح کرده بود چگونه زمین سازی کرد و برای یزید که آخرین تیر که بگیم اونا اطلاعات ندارن از عصر حضرت آدم اجدادش و ابو و شکل دمان رسول الله نکردن اه. او بتونه کار نهایی رو انجام بده خب جامعه فاسد جامعه فتنه زده جامعه شهوتران عرضش از دست رفته سرزمین ها زیاد شده اما اسلام احیا نشده اسلام سرزمین نمیخواد انسان رو میخواد هدایت رو میخواد سبیل رشت رو میخواد رشد رو میخواد تعالی اشریعت رو میخواد این جهان اسم که ما گفتیم نامویی که حضرت به سران بسره داده با سران اقوام صحبت کرده با صحابه صحبت کرده با تابن هران کسی که در جامعه نشان و صداقت و امکانی برای تحول لاش و با گفتگو با رفتن حضرت زمینه و بستر اصادت رو انجام داد. آخرین کاری که حضرت انجام دادن این که آمدن خودشون حرکت کردند تا از مدینه حرکت کردند و مکه صحبتهایی در مکه که خیلی صحبت های در اون چند ماهی که در مکه بودند تا رسیدن به کربلا خب اینجاها مانع شدن نگذاشتن ازد به کوفه برسید اگر نفس ازد به کوفه میرسید حتی در تاریخ داریم که کوفه رو و خروجی ها و ورودی بسته بودن حدیران نمیگذاشن از کوفه خارج بیشن بله. که خارج شد حبیبم که خارج شد پنهانی شبانه خارج شدن فرار کردن اخبار رو نمیگذاشتن برسه در اینجا میخواستن خیلی عضو میخوام میخواستن حضرت تو خفه کشی کنن تمام کنند، از رو جنازه بد... و خاک کنن حتی دفنم نکردن محف خواستن بکنن رها کنن برن تمام بشه چیزی باقی نمانن خانم حضرت زینب شروع کردن چیکار باید بکنن؟ یک، خانواده رو حفظ کنن مانه. عزتشون اقتدارشون به حساب شخصیتشون حد که حرمتی به این خانواده نباشه حجت خدا رو حفظ کنن دو جامعه رو که دارن برخورد میکنن جامعه جهالت داره جامعه فساد داره جامعه قفلت داره جامعه در بیخبریه این جامعه بیخبر رو بعد آگاه کنن از کجا؟ از ای که ازت داشتن میرفتن کوفهی مردهی که با تهدید خون زمینگیر شد تو هاشون فرو رفتن مسلم رو تنها گذاشتن داشتن و آقا عبدالله رو خیانت کردند. اینا که نامه داده بودن ازت صدا میکنه یه نامه هاتون هست بودن که نامه ها رو داشتن حمله میکردن باید. اول باید اونجا خانم عزت علیها. اولین کاری که میکنه این کبریت آگاهی و فوران انقلابی رو در کوفه ایجارت میکنه کوفه ای که فکر میکردن داره محل امن میشه حرکت های انقلابی شدیدی رو خود کوپه شروع کرد تبامینی که اصلا گاهن به حدی اینها پشیمان شده بودن که اصلا برایشون مهم نبود چه نتیجه میگرن. برایشون مهم بود که با خون خودشون چیکار کنن جبران مافات کنن. اصلا ببینید که تحلیل میکنم من نمیخوام توجیه کنم کار تبامی رو. کار سلیمان رو نمیخوام توجیح کنم ولی میخوام تحلیل اینه سلیمان و اصحابش اصلا نیمده بودن حکومت رو بگیرن اومده بودن کشته بشه فکر میکردن این کوتاهی که کردن اگر نصف این روز آشورا میرسیدن به امام حسین قطعا اتفاق جور دیگه میفتن به این استعب که نمیفتن زمین جور دیگه میشه. میخواستن جبران مافات کنن این آگاهی رو از ما که بنی اومعیه میخواست ساکت بمونه تحریب شده باقی بمونه توجیه کنن که اینا خارجی بودن میبینی که میگن خارجی بودن چون یه فقه الان هم دارن بعد اهل سنت که تحلیل میکنن میگن امام حسین بعد سید شباه و الجنه قبول داره اما خروج شد حق کسی که خروج میکنه بر امام عادل کشتنش این یه پوشوانه فقهی، یه پوشوانه عقیدتی بر حرکت عقیمشون ایجاد کنه. خانم خ... خانم حضرت زینب یک زن می‌خواد یک جامعه خیلی سخته. یه جهالت مضاعف رو بردار درست. این نمونه خدمتتون عرض کنم فرصت دارم. وقتی که وارد کوفه شدن می‌دونید دیگه همونجوری که استاد توضیح داده بعداً که پخش شد خب اینها اومدن به صورت اسیر اسیر خارجی سرارم بر نیزه بردن خب چرا سرار رو بر نیزه بردن تا قدرت کنند؟ کنند؟ چرا اینها رو به این نه بردن به هم بستن که حتی این جامعه میگنی قولی در علب قروزنجیره که میگن عجیبه از پشت دست میبندند، رو میبندن قروزنجیر میکنن یکی از این چند نفر اگر بیفته به همه اینها فشار مره به خوضی قول, قول جامعه ام. یعنی رنج و درد همه رو امام سجاد علیه السلام هست وارد میکنن از کجا وارد میکنن؟ پس با حقارت وارد میکنن با زلت وارد میکنن شطرانی که جهاز ندارن پوشش ندارن بدون پوشش وارد من نمیدونم من تحقیقی نکردم نمیدونم در جنگ های بعد از اسلام حتی در خلفا نسبت به کفارم اینجور برخورد میکردن یعنی سفارشاتی که در فقه اهل سنت داریم نسبت به کسی که اسیر عصیر اسیره و کافره اینجور برخورد میکنن نسبت به دختر چند ساله دنبالش میکنن و از کنم دامن آتش گرفته تلاشو بگیرن مگه نمیگن به شما محبت کنید برگردن اون محبت به زنان کفار هم حق اینها نبود؟ کجای فقه شما در جریان آشورا و کربلا و حرکت امام قابل توجیه؟ کدوم؟ با مبانی خودتون. نه با مبانی اهل با مبانی خودتون. با اصول خودتون. از کجا وارد شهر کوفه میکنن؟ از محلی که زباله هاشون رو از اونجا وارد میکنن. ببینید انقدر بیخردیه اینقدر جهالته اینقدر تبلیغات سو اثر گذاشته که قوقا میکنن شادی میکنن کیا اهل کوفه اهل کوفه کی... چه کسانی هستن شیعه هستن چه کسانی هستن با علی زندگی کردن علی یتیماشونو حفظ کرده خانواده هاشون رو حفظ کرده صدای علی هنوز تو کوفه هست مستند کلامشون هست این بیخردی خرد بی نتیجه چی ایجاد شده نتیجه تبلیغات نتیجه ترس روح وحشد و عجیبه یه شعر رو که میگن در مقاتل اومده ای اون کسانی که سر آقا عبدالله رو به نیزه کردون نیزه خیلی بلندی داشت افتخار میکنه یه شعری میخونه میگه من صاحب این نیزه طولانی هستم من صاحب این شمشیر سیقل شده هستم میدونی من قاتل کی هستم من قاتل کسی هستم که دین اصیل یعنی افتخار به اینکه من قاتل صاحب دین هستم شما با این جامعه انود با این جامعه زده با این جامعه ترسیده با این جامعه میله به دنیا داره چجور میخوایی صحبت کنی زینب جان؟ چی میخوای بگی؟ ببینید هنر زینب اینه که تو, خی... تو خراب نشینه اما کمتر از دوتو سخنرانی عشق همه شنو در قدرت میخواد قدرت روحی میخواد احدی از بچه ها نون و خرمای اونا رو نمیگرن. میگن صدقه بر ما حرامه میپرسم اگه شما بعضی جاهلن مگه شما کی هستی که صدقه بر شما حرامه حضرت تنها نمیخواد غذا رو بگیره میخواد اونو آگاه کنه میگم من کنیم کی هستی؟ حالا همین داستان در شام اتفاق افته در کوفه هم اتفاق افته میگه نه من شنیدم یه گروهی را بردن حالا این داستان ظاهرن دا در شام هست در خود کوف هم هست نه هست برای اسیر ها قضا ببرم میگه شما کی هستی؟ ببین حسد با دل سوخته. بعد وجود وجود نورانی باشه میگه شنیدید پیام این دین که میگه بله رسول الله میدونید ایشون دوتا نهوه داشته میدونید بله که چی بوده امام حسن و امام سیده بله میدونید علی پدرشون دختر گفت دخترم علی. ببینید وقتی که این سختی کار ما روحانیونو اینه بس صدقه از کسی نخواهیم رنجم ببینیم خیلی هم باشه میگن این قضاها رو پهت میکنه. کفر رو میخواد خانم حضرت زناب عوض کنه. این داره شعار میده. من قاتل حسینم. خب خانم میخواد با او صحبت کنه. راوی بگیدم یک خانم اومد بیرون نشناختم کیه. نمیشه ناسن. نمیخوان بشناسن. حضرت میگه که میدونه این سر کیست. خیلی شاعران شاعرانه. اجازه میخوام ولی هم که وقت میگذر این کلام زینب رو بخونم یه دقیقه بیشتر این سرسر کسیست که جبرائیل در گهواره برای او لالایی میگفت و میکایید و اصافید و اصافید از خدمت گذاران او بودن این کسی کسیستی که ملائکه رو آزاد کرد داستانه ملائکی که آزاد شد او که عرش. تو کسی رو کشتی که با کشتنت عرش خدا رو لرزند داره باورها رو نزدیک کند حسین رو بشناسند انتصابش رو بتونن جایگاهش رو بدون اونا نمیدونن امام حسین علیه السلام حرمت داره نه ماوی از بین برده بود روایات روایات جعلی ابوهریرا از بین برده بودن چرا امروز میان شیش نفر میگن من کربلا من... بودم گفتم پنج نفر شیر رو بکشی بهشتی میشی این باورها رو ایجاد کرد غیر از علماء که... که از هر جوهلایم جاهلترند در روایات دروغین خودشون به خورد این افراد دادن که بمب به خودت به بروچ پنج رو تو ازاداری بکش بهشتی میشی باورها خیلی سخت کندن این باورها این سر کسیست که عرش خدا لرزید از کشته شدنش. میخوای افتخار کنی؟ اینجور افتخار کن وای بر تو خانم میگه حالا داره جمعیت دارن گوش میدن کسی داره افتخار میکنه دقیقا مبارزه فرهنگی یک است که دل شکسته است یک است که زخنیست شلاخورده است یه سری دخترها دورش جمع شدن اون وقت کسی که داره پیروز داره میاد یک پیروز یک به شکست خورده او افتخار میکنه قاتلم شمشیرم تیزه برنده است داره میگه وی وای بر تو. تو برو بگو من قاتل محمدم من قاتل علیگم من قاتل مشتبام من قاتل فاطمم برو بگو برو بگو من کسانی که خوردم کشتم که اونها اعمت الهدا هستن اونها کسانی هستند که ارتباط با ملائکه داشتند ببینید اون جووی اینا همه نمیخوام میگن ما بیدینیم جوی رو که این ذهن رو داره برمیگردونه حضرت داره برمیگردونه کوفه اون چیزی رو که خمود پیدا کرده داره نورفشانی میکنه رو که معاویه این چندین ساله کرده ها... یزید ادامه داده بله با فس با پول و طلا و نمیدونم دختر و کنیز و چی جامعه رو فاسد کرده جامعه‌ای که فاسد بشه امام عادل نمیخواد چیزی رو رد میشه بی غیرت میشه بی میشه بی آتفه میشه به خودش رحم نمیکنه اصلا ببینید تو ده... از کنم لشکر کوفه بنی امیه ها نبودن که سرانش اونا بودن از کوفیا بودن سران کوفه بودن ترسیدن لشکر شام در کار نبود گفتن لشکر شام میخواهد بیاید لشکر خود کوفه رو علیه کوفه شوراندن با جهالت با تهدید اونهایی که شروع کردند. حالا من فرصت بافق نمی‌کنم فرصتی باغمون اونا که میرقصیدن و شادی می‌کردن هم سنگ می‌زدن قربتن الاله جشن گرفته بودند اینها تبدیل شدند که زنها آنچنان صدای شیون و گریه بلند شد که عبیদুল্লাহ ترسید و الله من این رو بگم برنامه رو ادامه بدید عبیদুল্লাহ قصدش بود که اینها رو در خونه متروکه اینها رو دفن کنه عهدی از اهل بیتو باقی نگذاره همین حرکت شروع حرکت خانم عزت زینم که ادامه داره خطبه اشون خطبه امام سجاد تو مراحل مختلف تو, تو مجد من واقعا خدمت عزیزان عرض میکنم تو آشورا آشورا رو تمام نکنید آشورا آشورا شروع میشود ادامه بدیم بیان رو ادامه بدیم فهم رو ادامه بدیم زینب رو از اینجا معرفی کنیم تا برن شام از شما برن مدینه ببینیم اصلا گفته هایی که حضرت داره یک منشور جاوید معرفت شناسی و اجتماع شناسی حالی ممنون سلامت بشتین شده حالا بخش دیگری هم خدمتتون خواهیم بود گفته می‌کنیم کنیم با حجت فرستان و مسلمین استاد لاجه وردی که درباره باره حضرت زینب و روشنگریه ایشون بیشتر برامون صحبت خواهند که حالا زمین که جمع مدیگی هم خواهید داشتید تو این چند درگاه در این لحظات آخرین غروب جمعه هم از همین عزیزانی که زحمت کشیدم واقعا من شاهد بودم با خلوص برنامه رو پیش میباردم و هرزت حالی که واقعا طبعا. زحمت فراوالی داشتیم هم تشکر کنم از بین شنوندگان بر برموی خوب شما یه نکه درم خدمت چون از کنم کتابایی که معرفی شد به این صورت نیست که کتاب ها فقط همینند الحمدلله کتاب فارسی خوبی دارید بعضا تخصصی هستن من جلسه هر خدمت تیه کننده عزیز از کردم که کتابایی که سعی شده تو مباحث بهش پرداختیم چون ما خیلی خلاصه سرید شدیم عزیزان می کتابایی که گفته شد اگر فرصتی بکنن مراجعه کنن میتونن ازش استفاده کنن در رابطه با کتابا آخرین کتابم حالا این من موضوع رو شروع کردم بعضی از دوستان به من همین دیشب براسه می داشتیم گفتن اگر کلمات آقا با عبدالله رو اگر یه کتابی رو معرفی کنی چهل حدیث به همین عنوان 40 حدیث از مرحوم الله صفائی حائری انتشارات لئنۃ القد به قسمت از کلمات آقا ابو عبدالله در دعای عرفه پرداخته کلمات الحسین رو گلچینی از کلمات الحسین چهل کلام حضرت انتخاب شده آشنایی با این کلمات به نظر میرسه با ابعاد از کنن معرفتی آقا عبدالله گذشت از نواعث تاریخی و تحلیل تاریخی که عزیزان آشنا هستند با کلمات حضرت هم آشنا بشن با عرفان حضرت که در دعای عرفه عرفان حضرت واقعا مورد توجه هست این مناسب هست در رابطه با مباحثی که این چند روز در خدمت شما بودیم من این دو سا دقیقه که دارم اینه که به بازتاب این کلمات در امروز ما بپردازه من فکر میکنم در خطبه آقا عبا عبدالله وظیفه همه ما مشخص شده وظیفه علماء ما مراجع ما اوناهایی که اعتبار معنوی دارن جریانات سیاسی و تحصیل گذار اجتماعی ما ما باید یک جریان هماهنگ هم باشیم هر کدوم در جایگاه دن موقعیت خودمون نقش ولایت پذیری خودمون برای حرکت دین و احیای مجدد دین بتونیم وزیف همون رو انجام بدیم اگر انجام ندیم خدایی نکرده کوتاه بیاییم مشکلات رو به دوش دیگران بندازیم نقاط ضعف رو برجسته کنیم برای که بیمسئولیتی خودمون رو مسئولیت پذیر نباشیم در حقیقت نقادی رو ندرد نداشته باشیم بترسیم از این که رو نقادی مثبت داشته باشیم خدایی نکرده تاریخ برمان تکرار خواهد شد و اگر هم توی تابعه هم مردم و هم مسئولین سعی کردن همه حممتشون رو گذاشتن واقعا توی مسئولی که شما می دیدید انسان اینسان نگاه مردم می کنه رو می بینین بم رو می بینه بم که خراب شده بود این جمعیت کین چین زنجان شما رو می‌بینید. مثلا اردبیل رو همه جا، همه جایی که هستن می‌بینید یه شور اصلا خودش یه معجزه است. یعنی خارق العاده است. این عشق، این توجه، این عشق نگاه بکنید تو ها شاید باور نکنید صورت این دختر خانم، صورت این آقا پسر، این جوان اصلا جوانی باشه که برای مادرش هم گریه کنه. اما این چیه؟ دل‌ها دست کیه؟ این زنده هست اون چون نور خداست. و تو قلب ها زنده است چون رحمت خدا ان شاء این نور هم کارسازتر بشه و هم کاربردی تر بشه و تبدیل به برنامه برای زندگی باشه این سادگی زندگی کردن با هم زندگی کردن سر سفره همدیگه بودن در این ایام این همه سر سفره همدیگه میشینن اصلا مهم نیست فامیله چه در خونه ها بازه به روی همه این فرهنگ همیشگی باید مابت باشه سفرههامون برای همدیگه باشه. غممون رو غمخورار همدیگه باشیم غم همدیگه رو بخوریم. تو امکانات با هم باشیم تو شادیمون با هم باشیم با هم بخندیم به قول آقام به هم نخندیم. دردها دلیل بر کنار گیری نباشه دلیل بر تحمل بیشتر باشه. اینشانده. خدا رو قسم دیم به این ساعت ملکوتی غروب جمعه بعد از آشورا به حق هجت خدا خداوند تأجیل در فلج مولا رو قرار بده دل آقا دل خون آقا رو دل خون آقا رو که علامه امینه فرمودن این روزها بر آقا امام زمان صدقه بدید خیلی سنگینه خیلی مصیبت سنگینه خدا به عشق آقا به سوز آقا انشاءالله به همه ما رحم کنه و ما رو از منتظرین امر حضرت از زابین امرشون از مرتقبین دولتشون از مستشهدین بینه ایدی هم قرار بده از هجید لفر از آقای ما زمان قرار بده از شامل تماس داده خلالیتی تلمیز خیلی ممنون دو. و متعکر از حضورتون در طول این روزها که خدمتون بودیم های لاجو استفاده وافری بودیم بردیم از کلامتون هم در باب خطبه منای حضرت عبدالله رسیم هم این یکی روزی که دیگه بحثمون به آشورا و امروز که به غروب بعد از آشورا در حقیقت سپری خیلی ممنونم اعتماس داری خیلی دارم اشالله صد دعا هامون در این غروب 11 هم محرم که جمعه هم هست دعا برای فرج آقا مولامون امام زمان محدی معود اجرالله تعالی فرج آقا شریف باشه سلام آقا ادایتا فدا گر ای تو من بمیرم برای تو من بمیرم برای تو یا نلحن دل همه شده خیامت آوا جون برای ق ب ب سر سلامت هامت آوا آقا آشور آره ولی دلان هنوز تو کر ملاس آقا سین زنا کجا برم حسینی کجاست آقا خونی که تو یه دلمه هنوز سرازیر نشده آقای هنوز میخوام گریه کنم هنوز چشم سیر نشده خوب، علا که زودتر همه ما هم بتونیم پادر رکاب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف بذاریم و کمکگیاری باشیم برای منتقم خون حسین علیه السلام دوستان گرامی هنگام ازان مغرب بفق شهر مقدس قوم ساعت 17 و 21 دقیقه هست همچنان برنامه موجعش که تقریمتون میشه تا ساعت 17 و 45 دقیقه هم در خدمت شما عزیزان هست خدایا دل سوختگانیم در این قربت بیانتها دلهایمان سراسر من سرا سر قصه از دعا ترا قسم می دهیم به حق بزرگ مظلوم کربلا که نام ما را در شمار مصیبت زدگانش ثبت کنی و دلهایمان را سرشار از سنبات و رحمت و مغفرت خود سازی اللهم هم في فی مقامی هاذا منتننا همه سلامواتون و رحمت و م خدایا این بنده توست با ذکر نام مقدس حسین علیه السلام نزد تو آمده و برای تمسک به حبل المتین تو به او متحصل شده است. خدایا بر تربت پاکش سجده میبرم و تو را می به حق نام حسین علیه السلام مرا در زمره حسینیان قرار. شبی ہے زبی ہے زہرا عالم دار حرم شبی ہے مولا شده شبی ہے هیادت توی خیبر شبی ہے هیادت توی صحار دل کو ران چھ شوری بار شده ناتجات شبیه زهرآ شده، علامدار هران شبیه مولا شده شبیه هدف توی قلب وابیلا پسر ام به نام آنلا علامی کوبد زای This ain't never, baby, boy. این اثر عمر به بی سراب نزه های بی هم زاد و بی گلو یغ که تفل رو برو بی دبین شکوه در خوب دعوت میکنیم که درس از آشورا رو بشنوید از زبان حجت و استاد بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیکه یا ابا عبدالله یادده این درس بزرگ آشورا تکلیف گرائی. امام اماموسیل علیه السلام ای رو در عمل به ما آموخ که انجام وظیفه مهمه شما زندگیشون رو بررسی کنید در مدتی که در خدمت پدر بزرگوارشون هست در چندین جنگ خونین در کنارشون حضور داره بر مبنای تکلیف وقتی برادرش به امامت میرسه تسلیم محض ایشونه در صلح و در جنگ با برادرش امام حسن علیه السلام وقتی هم ده سال در دوران معاویه ایشون امامه اما بر اساس تکلیف سخنه نمیگوید از قیام خبری نیست اما به محض اینکه احساس میکنه اسلام داره از بین میره قرآن به سخریه گرفته میشه وحی الهی رو تمسخر میکنن احساس تکلیف میکنه و آهنگ قیام داره این رو باز ما میتونیم از نامه ها، ها، چه اقامتش در مکه، چه موقع خروج از مکه به سمت کوفه به خوبی بتونیم. یک سخنی خیلی اوج داره یا به نام ترماه ابن عدی ایشون رو مخاطب قرار میده با یارانش میفرامد اما والله اینیل ارجوان یکون خیرا ما اراد الله بنا. امیدوارم آنچه چه است را خدا برای ما پیش بیاورد. نا ام ظفرنا کشته بشیم یا پیروز بشیم مهم ادای تکلیفه هر جا که شما دیدید ابا عبدالله حرکتی کرده سخنی گفته فعالیتی کرده بر مبنای تکلیفه اگر زن و بچه رو همراه خودش میاره بر مبنای تکلیفه اگر خودش به شهادت میرسه و یارانش بر مبنای تکلیفه و اگر یارانش به سار میروند به بهاسارت میروند اینم بر مبنای تکلیف. امیدواریم ما تکلیف تکلیفگرا باشیم عنوان در ساموز بزرگ مکتب آشورا یا علی ابن الحسین ای یادگار کربلا شاید تقدیر چنین بود که تو بمانی، ای همیشه بیدار، ای آن که سرات مستقیم در سایه نیایش های توست، ای پناهگاه بینوایان شب‌های شبهای مدینه، ای فرزند کشتی فرات، ای پیام آور فرخنگ آشورا، هنوز هم لحظه های سبز بیداری، تمام تقبیم خورشیدی عشق در کوچه آفتابی صدای تو معنا می شود ای سبور غمگین در ازای تو به سوک خواهیم نشست تا داهای مکرره تو را در آشورا مرور کنیم و به عمق قمگزای عشق بگید دوستان گرامی حجاتون با آقا با عبدالد حسین نره سلام باشه و همچنان ما رو دای خیر بفهمه دن را اگر از حسین بگیرم چه کنم بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم فردا که کسی را به کسی کاری نیست دامان حسین اگر نگیرم چه کنم خدا سلام بر پرچم و علم سلام بر شعر محتشم.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 دنیا پر از ظلم و جور است شما ببینید چه می در فلسطین چه می کنند در عراق چه می کنند در کشورهای گوناگون چه می کنند با ملت های دنیا چه می کنند با فقرا چه می با سروت های ملی کشورها چه می کنند عباد عظیم حرکت حسین عبدالی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع می شود